یه اشکالی که داره ایتیار میاد این میخواییم با خوری داستان میشه خب خب روی کردهای بخش بندی در سازمان یا ساختار سازمانی در سازمان استرکرین انبا اسلام چارت های سازمانی رو که ما میتونیم در سازمان داشته باشیم داستانش به چه صورته خب؟ نقدر کنیم بخش بندی یا استراکچرین یا ساختار سازمانی روکرد های سنتی کلستی کجی رو من اینان همه هم توضیح اینم خیلی فریم خب؟ روکرد می‌تونه بر اساس تعداد زمان وظیفه‌ای منطقه جغرافیایی محصول، مشتری یا بازار باشه این رویکرد رو بهش بیدن رویکرد سنتی کلاسیک یعنی تعریف سازمانی بر اساس رویکرد سنتی و کلاسیک خب؟ داستانش به چه صورتی؟ دقت بکنیم آزمان که من دیدم پیاده سازی میشه ساختار وزیفهی ساختار وزیفهی یعنی در اساس شرخ شغل و پوزیشن افراد و ارتباطاتی که بین افراد وجود داره میان ساختار سازمانی رو میچینن مثلا مدیرانه مدیر بازاریابی سلام. سرگی بسن. سرگی بسن. کارشناس فروش یا کارشناسان تحقیقات بازار یا از این طرف مدیر تولید سرپرست تولید اپراتور ها دروسته این ساختار بهش میگن ساختار وظیفه‌ای یعنی بر اساس شهر شغل مدیر بازاریابی شهر شغله مدیر تولید شهر شغل ما بگیم زیر نظر مدیر تولید سرپرست تولید باشه این یه شرح شغلته زیر نظر سرپرست تولید اپراتور ها باید باشن تحقیقات کارشناس تقاضا بازار کارشناسان فروش اینا زیر نظر مدیر بازاریابی هن. این چارت سازمانی رو بهش میکنم چارت سازمانی وزیفهی متوجه هستی که در اکثر شرکت‌ها و سازمان ها اجرا و پیاده سازی میشه یعنی با روی هم همون سنتی جا. با همون رویکرد سنتی یا کلاسیک بهش میکنم رویکرد سنتی یا کلاسیک حالا این ساختار سازمانی خوبه، مشکل خاصی نداره در بعضی از شرکت‌ها با توجه به استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که دارن این ساختار جوابگو نیست. ببینید داستان چیه. برقرار؟ <تصفيق> نه <coughs> یه نوشتره من بهتون میگم و بعد ادامه میدم بحثم یه نوشتره داخل پرانورفز البته این قضیه که من دارم میدم باز بعدا شما خیلی کاملتر میدون استراتژی های بازاریابی در سطح سازمان ها به چهار گروه تقسیم بندی میشه چهار گروه متوجه هستی؟ استراتژی بازاریابی یه موقع از سازمان استراتیجی بازاریابیش رو سوخت در بازاره مرکت پنتریشن مارکت پنیتریشن این محلفه رو ما میذاریم بازار این محلفه رو میذاریم محصول یه موقع سازمان استراتژی بازارش توسعه بازاره یعنی مارکت دیبلومنت یه موقع از اصطلاح بازارش به این سمت حرکت میکنه خب توسعه محصوله یعنی پروداکت دیولمنت یه موقع هست سازمان هم به این سمت حرکت میکنه هم به این سمت, به این سمت تو سلول شماره چهار، سلول شما چهار رو بهش میگن تنبو پذیری خب؟ میشه diversification درقت کنیم اگر سازمان تو سلول اول باشه، یعنی رسوخ در بازار یعنی یک محصول رو برای یک بازار داره تولید میکنه یعنی نه توسعه محصول داره، نه توسعه بازار داره مثال مثال، شرکت ایران خود رو خب، در سال فرض بفرمایید قبل از انقلاب دیگه ها 1355-56 پیکان تولید میکرد فقط در بازار ایران اینو بهش میگن رستوخ در بازار مارکت پنتریشن، یک محصول، یک بازار شاندیز در مشت شاندیز مشت تا چند سال گذشته استراتژی چی بود؟ رسوخ در بازار، شیشلیک فقط برای بازار مشت. اینو بهش میگن رسوخ در بازار. <تصفيق> یه موقع شرکت میره به سمت توسعه بازار، مارکت دیولپمنتس. یعنی یک محصولو برای بازارهای مختلف میفرسته. مثل زعفران ایران. زعفران ایران برای بازارهای مختلف داره صادر میشه. فرش ایران، خادیا برندهای خارجی رو بریم سراغش، ستارباکس یک برند معروفیه که در اکثر کشورهای خارجی هست بقیقت کافی شامپ آره در ایران آره دیگه، نه آره از اکسپشن اینو ما بشه مارکت دیولوپنت، یعنی قهوه و نشیدنی قهوه برای بازارهای مختلف مارکت دیولوپنت، خب؟ یا مثلا، لامبورگینی، استراتیجیش مارکت دیولوپنته لامبورگینی، ماشین لامبورگینی برای بازارهای مختلف فراری، مارکت دیولوپمنته خب، ولی موقع هست سازمان ها به سمت پایین حرکت میکنه یعنی برای یک بازار مخصولهای مختلف رو تولید میکنن، مثل کاله محصولات مختلف کاله برای بازار ایران ماست، روب، چه میدونم، برنج، سوسیس، کالباس، مرقب درسته؟ برنج علاوته نیست چای گونستان بولست استراتژیش پروداکت به داکمنت توسعه محصوله. انواع اقسام چای، برند، بعضی میبینی الان ماشینه کیا هم دارن وارد میکنن خانواده گرامی، درسته؟ برای کجا؟ برای بازار ایران. یه موقع ها حرکت میکنن به سمت دیوورسفیکیشن، تنوع پذیری. خب؟ تنوع پذیری. تنوع پذیری یعنی محصولات مختلف برای بازارهای مختلف. مثل حمدی درسته؟ مثل سامسونگ سامسونگ محصولات صوتی و تلویزیون و داره محصولات آشپزخانه داره و و و و برو تا آخر محصولات مختلف برای بازارهای مختلف هماندهایی از موتور اواپیما بگی برو تا خود ماشین و ابزارهای موسیقی و اینا برای بازارهای مختلف این استراتیجی رو بهش میگن diversification یا حرب با پذیری چانم مثلا من هنگ محصول رو از کردم دارم الان میدنش به یه قناتی ها در بازار میشه دیگه این محصولو میدنش به شما فقط این محصولو تولید میکنم بخشی از اصلا همینه یعنی آره رسوخ در بازار حالا دارم همین کار هم میکنن میکنم تو بخشه کوچیکتر میدن به سوپری ها خب بخش بندی کردن مناطقو داره میگرسم توسه بازار توسه بازار. الا تو در این این کار دارم از جمله که مثلا و پذیری هم خامده. چه کناب و پزی داریم مثلاً فامب کنه چی می‌زنیم؟ مبلغ وادا زد نه کنابو تو خودش من من داری من درست می‌گیم من ادایه نمی‌دم از یارم امیدا کفارت چه سوالی که کردی من خب بار سال زمانی می‌ره این تو بحث مدیریت استراتژیک مبازش بازش کناب و پزی بale بله، شما را تنوع پذیری داری. متوال لایه های مختلف داره تنوع پذیری. یه موقع است شما یه قنادی داری شیرنی های مختلف داری تولید میکنی. خورشت، دسر، کیک، ای؟ چه میدونم پیراشکی. این ما، اینو با روش تنوع پذیری همگن، هموجینیوس دایورسفیکیشن استراتژی. یعنی محصولات مرتبط دار میزنید که ارتباطات تکنولوژیکی، فیزیکی، منابعی با هم داره. خب برای یه موقع یه شرکتی میشه مثل چای گلستان چای میزنه برنج میزنه از اون طرف بیاد ماشین کیار هم وارد می‌کنه این تنوع پذیری بهش میگه هیتروجنیه است غیر همگنه خب نه منظور من این بود که مثلا من الان رسوب‌گذاری رو انجام دادم حالا لایه‌ای بعدی که میخوام انجام بدم چیه میتونه حرکت کنه به سمت راست میتونه حرکت کنه به سمت پایین که مستمر بردیس ولی تو شرایط شما که فلسفه کارت شیرنیپزی، قنادیه دایورسیفیکیشن رو اگه باردش میشه حالا تا همگر باشه باید نه فلسط رو باشه آره. حالا من اینو متوجه شده اینو بهشم بگه استراتژی بازاریابی حالا ما تو درس بازاریابی، درس بعد تو بازاریابی باید خویه خب؟ اونجا در قطع میخونید کاملا بحث بازاریابی استراتژی بازاریابی رو حالا آره باش خویی هم خری برای یه بحثی که وجود داره من این چرا گفتم؟ در اساس استراتژی‌های مختلف ساختار سازمانی شما متفاوت باید باشه اگر استراتژی رسوخ در بازاره ساختار سازمانی وظیفه ایه خب؟ درسته؟ اگر استراتژی توسعه محصوله توسعه محصوله ساختار سازمانی خب، بر اساس محصول و مشتریه مزران خواهد، بر اساس محصوله اشتباه خب، اگر استراتژی توسعه بازار ساختار سازمانید بر اساس مشتری یا منطقه جغرافیاییه. تنب و پذیریه خب و اگر استراتژی تنب و پذیریه ساختار سازمانی شما یه ساختار سازمانی ترکیبی میشه ببین من الان چهار نوع ساختار سازمانیه به صورت بهتون گفتم وزیفه ای اگه رو در بازار اگه توسعه بازاری میده به سفت مشتری منطقا جغرافیایی اگر محصوله، میای به سمت ساختاره میشه بر اساس محصول و اگر تنف پذیره میشه ترکیب بیمین ساختارها رو با هم بحث کنیم چه کنم ساختار سازمانی بر اساس ساختاره سازمانی در اساس محصول محصول، درسته؟ چجیره میشه ساختار سازمانی؟ یه مدیر آمه درسته؟ مثلا، فرض کن سه نوع محصول رو داری تولید سه نوع محصول، متوجه هستی؟ مدیره، محصوله، یک، مدیر محصوله یک مدیر. محصول دو خب و مدیر محصول سه خب مدیر محصول یک خودش مدیر بازاریابی داره درسته؟ مدیر تولید داره یا چه اصلا مدیر مالی داره محصول دو ها به همین صورت مدیر بازاریابی داره مدیر تولید داره و مدیر مالی ماتباز شده قضیه رو بر اساس محصول اوکی؟ کلیره برای تو اون الان؟ حالا این استراتژی توصیه بازار باشه توسعه بازار باشه آقا نه بریم مسیس مسیس مسیس فرایند مسیج آمده مسیس شما آها بیمه کسا ساختاش اساس محسوس محسوس محسوس. بیمه آتش سوزیه، بیمه عمر حوادثه، بیمه شخص صاده، آره برای اساسی باشه اوکی؟ جایی نداشته باشه، خدماتی باشه چی؟ فرصه درشونم یه محسوس. یه محسس بیمه، یه محسس خدماتی دیگه آ محصول نظر اون خدمات هم هست، البته محصول شامل کالا و خدماته. خب؟ مثلا ایشون بیمه اومه حوادث دارم بیمه آتش سوزی داره، بیمه شخص ثالث داره، عقد خدمت ساختاری جدا داشته باشه. این در واقع این چیزی که الان ما کشیدیم این بودش که حالا دو تا محصول یا سه تا محصوله. خب؟ هر محصولی هم منصوبیه خودش یه داستان مجزایی داره. خب؟ پس همین حالای مکتر گفتم تنب و پذیری مذرت بخواهم اینو به داره باشه من بعدن اینو خدمت نتونی کرد ساختار بعدی. ساختار بعدی ساختار بعدی ساختار سازمانی بر اساس مشتریان یا بازار یعنی وقتی شما توصیه بازار دارید توصیه بازار دارید متوجه مدیر مدیرامه بازار مدیر بازار تهران مثال دارم میزنم مدیر بازار شهرستان ها مدیر بازارهای بین المللی آ ها کدوم ساختار جداگانه ای داره حالا اصلا مدیر بازار تهران مسلماً یا مدیر بازار بی بعد داشته باشه خب این مسلما هم بعد مدیر تولید داشته باشه و اله آخر این ساختار سازمانی رو بر اساس مشتریان یا بازار های متوقعی داستان چیه؟ حالا سوال من دارم برم که عمو اصلا شیر گیاه داره تولید میکنه برای بازارهای مختلف درسته ساختارش چطور باشه وظیفه ای بعد باشه بر اساس محصول بر اساس مشتری خدمت کنه جوب نه خودش گفت دیگه خود من علام دارم میرم به سمت توسعه محصول برای بازارهای مختلف چه ساختاره با در نظر ساختار ترکیبی باشه <تصفيق> که بتونه هم بازار مشتری داشته باشه هم بازار محصولش هم توزیع شد باد حالا میتونه یکیش بیشتر باشه یکیش کوچکتر باشه، باد دقت کن ما توزیع محصولو گفتیم، درسته یا نه؟ توزیع بازارم گفتیم، درسته یا نه؟ هم گفتیم، درسته؟ آ؟ بله. اینا میتونه از کم کم، کم و کم به زیاد، زیاد و زیاد حرکت بکنه میدونی یعنی چی؟ یه موقع شما توصیه محصول داریم توصیه محصول کمه کم وقتی که میگن یعنی هنگه متوجه هستی؟ زیاد که میگن یعنی غیر هنگه بذاریم این مسال برای بزنم مسال توصیه محصول خب؟ اینو شش مختلف میزنه، این توسعه محصول دیگه. ها؟ هیوندائی هم داره محصولات مختلف میزنه. توسعه محصول در رابطه با قضیه ایشون هموجینیوسه. درست یا نه؟ هموگنه. خب، کمه. ولی در هیوندائی زیاده، هیتروجنیوسه. اوکی؟ توسعه بازار میتونه همگن کم باشه، میتونه غیر همگن زیاد باشه. یه موقع شما توسه بازار اینجوریه مثلا تهران شخصتانه خب؟ یه موقع توسعه بازار اینه مثل مثلا مثلا فرس شرکت اپل بازار آمریکا داره، بازار اروپا داره، بازار آفریقا داره، بازار آسیای دور داره این خیلی توسعه بازارش هیتروچینیس و زیاده خب؟ اگر بخصی که وجود داره اگر توسعه محصول توسعه بازار و تمام دو که ترکیب از این هست. کم باشه، کم باشه و چلا جاهست یه‌ریمه یعنی سه‌قالا دی شون دیو نه‌سه کمه دیگه آ ساختاری که بعد دررسام پیش ساختار وظیفه‌ایه این ساختار ساختار وظیفه‌ای بعد دررسام باشه دبیلی نداره مثلا برای باغ نواف بیاد یه مدیر بذاره برای مثلا استرام بیاد یه مدیر بذاره چه اتفاقی میفته بیوروکراسی تو سازمان شرکت به باده علی کی داره میبره بالا ولی اگر شما رفتیم به سمت غیره همگل بله ساختار سازمانی تو این حالا باید در اساس مشتری محصول یا ترکیبی باشیم متوجه چه داستان چیه؟ پس دقت کن اگر شما به سمت محصولات مختلف ردی یا به بردنی ساختات محصول کنیم و محصول مشتری دقت کن ببینید چقدر شما همگلی چقدر غیر همگل آیا تناوب پذیری شما، توسعه محصول، توسعه بازار شما همگنه؟ ساختار ساختار وظیفه‌ای. اگه بسط غیر همگن داره چهو می‌بینی؟ مجبوری ساختار درسته مشتری محصول باشه. می‌دونی چرا؟ یه بار برنج داری تولید می‌کنی و چای داری تولید می‌کنی. مثل چای گلستان. فلسفه‌ی برنج با چای تومن سن و فرق می‌کنه. بازاریابیش متفاوته، تولیدش متفاوته. عملیاتش متفاوته، پس ساختارش هم باید متفاوت باشه اینجا ما ساختار میگه بر اساس محصول یا بازار باید برای ولی شیرنی فروشی، حالا دیگه باق نواب و دسه و کهک و اینا یه قرنات همه کارها رو میتونه انجام بده مطمئنگی مذهبه شده اینجاست که شما وقتی به این سطح سر... به سطح سر... هیتروجینیست که میدید ساختارتون مکانیک یا ارگانیک تره؟ هیتروجینیست، غیر همگه. به سمت نهید همگر که ساختار که هستا صاختار ولی به سمت صاختاره در حقیقت همگر که شما میریست صاختارتون باید چی باشه؟ فلکت فلکتر باشه، ارگانیکتر باشه اوکی؟ سوالی هست؟ خب بریم یه چند تا نکته اضافه من یتا استافت ادامه نمیدم چون زمان میبره بالا بحث بعدی بشیم بریم سوالات یه بحثی بکنیم اینکه دو تا سوالم و مقصد کنم برای جلسه بعدی خب آه، سوالات رو بخونید من بعد چند تا جواب بدمش عارفش مونده؟ دو تا مسئله استراتیژی او هر چی میگم من سوالات رو, رو بخون اول یک دو سه شهر وظیفه تا شهر شغل تا بوتر شهر وظیفه شهر شغل رو گفتیم سال بعدی ساختار مکانیک با ارگانی گفتیم مثلث استراتژی فرق استراتژی با برنامه استراتژی با برنامه هم گفتیم سال بعدی همون موری و مورا چی 3 مورا، مودی و 3M مورا. مورا خب مثلث استراتژی بمونه من تعریف 3M رو بگم. خب شما ترجمه پیدا کردین؟ تحقیقه پیدا کردیم؟ موری، مورا، مودا مودا موری مورا اسم الله نفهمیم، فرقیم موری، مورا، مودا چیه؟ چی شما شواجرین <تصفيق> دیگه بایی <تصفيق> <جان>؟ که <تصفيق> خود مودا استاد یعنی اطلاف خوب؟ مودا یعنی دیگه؟ مصرف کننده، منابع ذخایر زخایر ولی پیش ارزشی بر نمیگردیم. نه هر شخص دو برمان چی هر شخص دو برمان نگردیم؟ مودان خب؟ مثلا محصولتی که مشتری می نداریم میشه ولی مشتره نداریم که شرکت جلو جدون رو میگرفتیم دیگه؟ کایزن. کایزن یعنی بهبود در سطح سازمان ما سازمان اما باید یک سازمان های داینامیک باشیم یعنی به صورت مستمر بهبود پیدا بکنه برای که ما بهبود مستمر رو در سطح سازمان داشته باشیم دوستان، سه تا کانسپت همیشه باید من در نظرمون باشه مودا، موری، مورا مودا، شناسایی و حصف کلیه فعالیت هایی که در سطح سازمان ارزش افزوده نداره و حزینه سازه متوجه هستی؟ و حزینه سازه مثلا فرض کنید مودا نیروی انسانی را استخدام کردید ولی ولی عملاً هیچ کاری برای شما انجام ندید تبدیل میشه به یه مودا فعالیت‌های های پیپر ورکر پیپر ورکر یعنی کارهای کاغذی. در سطح سازمان اقدر بالاست که حزینه سازه برای تبدیل میشه به مودا متوجه هستی؟ یا مثلا به فرض مثال مواد اولی که برای سازمانت خریداری کرد مناسب نبوده و باعث دوباره کاری تو سازمان میشه این دوباره کاری اسمش هست مودا پس مودا کلیه فعالیت های حزینه زاد و فاقد ارزش خب؟ موری چیه؟ ما در سازمان باید فعالیت های موازی را حسب کنیم فعالیت‌های مبازی یعنی موری و هزینه برای ساز برای سازمان اوکی؟ و فعالیت مبازی مثل چیه؟ مثل چی می‌بونه؟ یه مثال شما آئی به زدی موقع بره گفتیم من یکیلو آوردم پیگیری با کاره من خودم دارم باش پیگیری می‌کنم یا میشه موری اسمش هست موری مدیر وقتی که قرار انجام بده پیگیری کنه بعد تو باید دو بار دو مدیر پیگیری کنه چون کار پیگیری کردی یا نکردی اینا هزینه حazir یعنی فعالیت موقت در اساسفا بعد شما چه کاری من این نفر رو بعد خودم میگیرم خودم اینو خیالم دا واقعا داش میدم موری یعنی حذف و یا تلفیق اینجا تلفیق فعالیت موقت میشه تلفیق فعالیت موقت میشه اوکی بعدش اخر سازمان ها باید مورا داشته باشن مورا اون دست, دست فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفیت خدمات به فعالیت های سازمان اضافه میشن و ما باید یه سری فعالیت ها رو به سازمان اضافه بکنیم که باعث افزایش ارزش بشه مثلا شما نرم افزار امایس میارید سازمانه که پیپر ورکه تو کاج این میشه مورا خب یا مثلا نرم افزار سیاره ار ام میارید سازمانه که مدیریت ارتباط با مشتریان رو داشته باشید این میشه مورا متوجه نظر من هستید خیلی خوب از ستای ما متوجه شدید بله در آتی یادداشت کنید کنیم رایت سایزی با دن سایزی چی رایت سایز با دان سایز چه فرکنی کنم؟ تخبوتش چیه؟ ترجمه هاش نمی‌دونم نمیدونم نه واقع اینا ترجمه نداره ببین یه سری اصطلاحات ها تو کسب و کار وجود داره واقعا ترجمه نداره واقعا ترجمه نداره این صادقانه دارم بابره نمیشه؟ نه؟ ساتق من؟ نه، نداره شما میکیم دهید که بابره این رایی خب، نمیخواهم، اون رو خواهد توزی اندازه راست، اندازه چپ، یعنی اون توضیه شما خب، حالا همه مشخص کنید. بلی از که مشخص که دو دوتا بر چه فرقی میکنه کدومش عزیز ستانه هی که من بهتون گفتم موری، مورا، مودا آیا رایت سایز مشخص کنید. کن یا موراست مو... دانزایز موداست موریه یا موراست کدومشه؟ اینه مشخص کنید درسته؟ خیلی مهمه ها دانزایز با رایزایز خیلی مهمه اوکی؟ یه سوال برای تفریحی من برم یه سوال تفریح تخصوزی نیستش خب سوال بعدی، من جلسه برم ثلاث تا کانسپت رو شما دیدید دیگه سی او چیف اکزکیوتیو آفیسر پرزیدنت منیجینگ دایرکتور هر توش به معنی مدیر عامل. بزنس نگاه کنیم نگفتن بعضیا مثلا یه سمتش فارسی یه سمت دیگه انگلیسی بعضی میسن سی او بعضی میسن منیجینگ دایرکتور بعضی میسن پرزیدنت اوکی ترجمه هر سه تاش ولی سه تا فرق میکنه. فرق احساسی فرق سی او و منیجین دیرکتر درسته؟ من فرق میکنم سواله بدی سال شمارست. رهبری و مدیریت. تفاوت رهبری با مدیریت چیه؟ leadership management leadership management شماره چهار سازمان های با حافظه سازمان های بدون حافظه فرق سازمان های با حافظه و سازمان های بدون حافظه در چیه؟ آه؟ گفتید دیگه هاست دادم که کارمنداشون رو اخراج میکنند یه بخشش بود بعد از هم سال. اون یعنی بخص فریزنگ اون یعنی بخصی شما رودمپ توسعی منابع انسانی رو در سازمان نداری. همین روز گفتم از. دارید نرست، نرست، نرست نه یه ارگنایزیشنال memory نن ارگنایزیشنال memory سازمان هایی که حافظه دارن و سازمان هایی که حافظه ندارن اوکی؟ پس سنابشید آه یه نکته ما جلسه ما سرکون روی کلاس من ها؟ بله یه زنی که مثلا دوازدر بشه، دوازدر یک مشکل نداری شما؟ سادی تا یه صحیح کاره استاد خدا آقا از عذرش میاد